بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الله و سیدنا رسول الله و آله خیبین و خافرین و معصومین و اللهم و, و رحمتی که آفنا باه که متعرض روایاتی شدیم که در این کتاب جامال احادیس رحمه الله جمعاوری ترمودن در باب چارله از باب احواب الخضا و مجموعاً با اون تقدمه یکیش عدد روایات رو به 28 شوره سونده در وسایی کمتر بود نقطه بود الان این ای از روایات شماره یه ده این کتاب کتاب ولی امامت در تفسیر این کتاب به نام معروف صدوق پدر صدوق نسبت داده شده. 4 پرده مستقلاً شاخیده شده. دیگه چون خیلی موضوع نیست باشه، هرها. اما سهل بن احمد. میگم من چیکار؟ بیرون دیگه واقعا محترم در ذهن باشه این سهل بن احمد دیباجی که یکی از نسخ معروف جعفریات رو به بغداد آورده. اصل نسخه معروف جعفریات بغداد همین نسخه سهل بن احمد دیواجی ایشان از سهل ابن احمد دیباجی از محمد بن محمد ابن الاشعز توضیحاتش بزرش که محمد بن محمد در مصر بوده هم موسفن اسماعی هن عدین هن آبایی این معلوز را که این هم از افضال جعفری یاده یا اشعزی یاد قال قال رسول اللہ ایجا کن بر رشوه فه انها محض و کف ولا یشن مصاحب رشوه هل جنه این هم یک نسخه از کتاب جعفریات تا اینجا معلوم شد که از اجرایه به از کتاب جعفریات که منصوب است به امیرمونی مرس احتمالا قطعاتی از اون کتاب قضاگیرات و احوان خوشه چندی مرس نرو شده این هم متعدد و متونه متعدد نرو شده به رضا از مهم نیست که شما دنبال سند بیوختین سند یکی. و که نسخ متعدده دید. این نسخه یاکم و رشورت این ها محضور که خیلن اجالتا ما جایی نه در سنیه ها و نه در شیعه ها و لا مصاحب و رشوری هل نه هم محضور. و دیگه ازم دو سه تا محض از جعفریات ها خونه کردیم از این محضور مختلفی که از جعفریات در برای ما شده از این کتاب <تصفيق> من جامعال احادیس و جامعال اخبار خلق کردم این اشتباه شده اون حدیث شماره چهار از جامعال احادیس حدیث شماره پنج از جامعال اخبار اون شماره چهار جامعال احادیث یک کتاب ترزن کچیک که از خیلی بزرگ نیست جامعال احادیس منصوب هستی که از علمای قوم چه افره نحمد قومی صاحب کتاب دسته هم داره چاخت در مسلسلات داره حالا عروس داره چند تا کتاب داره. خودم بود کتاب سه بار اومدش، تو بار نشه، تو این بله. من دیروز اینو جمار اخبار خوندم، اشتباه کردم. این جمار اخبار این اسماله که آفر ده، خیلی وقت پیش اش نشیده. معذور کتابش هم بزرگه، خلا جمار اخبار. جمار اخبار ماله خیریه، دومین جمار اخباره. اشتباه من دیروز به اینسا خل کردم. به هر حال درستوش این اشتباه. راست این کتابای موجودی اشرافی ندارم. نه. که مثلا ایشون کامک کرده باشید. اشرافی. این اسم جامعه احادیث شیعه است والله. این که جامعه بیا مال احادیث. مجموعه ای که از بزرگان قومه من اجازه دیدم حواسن هر چی گفتن ارسال داره. این محمد بن عبدالله ما الان ما نمیشناسم این محمد بن عبدالله کیه. چون جامعه احادیث اما کتاب لطیفیه هم مسلسلاتش قشنگه. همه عروس شد شنکتا با عروس داره مسلسلات داره جامعال احادیث داره ایشون از علمای قومه که عفل ابن احمد که عفل ابن محمد ابن احمد قومیان چی مرموم حاجی نوری در مسلسلات اون تقریز ایشان شده هم دیگر هم شده هم منحصه بیشانی اما دوگومی از جامعال اخباره که این احتمالا از همون جامعال احادیث کنه این مال شعریه. شعریه این مال شعیریه حدیث شمای 5 و 6 و 7 و 8 اینا کلن از جامعال احبار شعیبیه حدیث شمای 4 از احسال مرحوم قومیست داران بیان حواظ امید بوده جاوجا کرده برحال آقایم پس یک روایت از کتاب جامعال احبار قومی آمده در اونجا از اشعاتیات لعنر اراشی و مرتفی ملقون ها در نسخ دیگه نداریم تو جامعه اخبار هم مرمو شعیل سبزاری رو چون نه رو یک آمده یا کن و رشت انا محض الکوف این رو هم در غیر از کتاب و امام وقتفسره نداریم علی امام وقتفسره عل عل از جعفریات یاد رو کرده یک نسخم که باز دیروز خوندیم اگر یاد و مبارکتون باشه روایات, جع... روایات جعفریات که ایجا در وسط قرده بود من از سوه. این در کتاب جعفریادی که به چاپ ما رسیده دارید. این رو ما داریم. یکی دیگه از داعمال اسلام لابل بن امار امیر. این هم تو داعه اسلام جعفریادی ایمیر. این هم ما نداریم. فقط داعمال اسلام بله از اون متن داعه این متن سلاتی شما داریم تو جعفریاد تو جعفریادی که هده به ما رسیده. نسخه هندی. این رو را اسم سه اس کا کردم از جعفر یاد مطرح بوده یعنی سه بار در شیعه مطرح شده و طرح معروفش از توسل در اهل بنا یک بار در هرن چهارم یک بار در هرن ششم توسط مرحوم سید عبد الله و بار اخیر هم که قبل در حدود زمان صاحب مستعلیکی که از زمان ایشان احتمال به برکت احباس صاحب مستعلیک باشه این یواشاش در میان روایات ما آمل و پیدا کرد که با نشر کتاب ترسال بروجه دید یه شعارتش بیشتر شد یه کتاب مستقبی شد پس دو تخ متعددی در اینجا از کتاب جعفریات هست اونی که الان به ما رسیده فقط همین مقداره یکیش من از صورت ارشادت به حکمه یکیش هم لابرد منقاضه و رزبند من قاضی. این مقداریست که الان به ما رسیده و در این مقدار معلوم میشه که مسئله رشوه حرامه و رزق جای دادن. لکن یک معنی هم در اختیار صاحب دارن بود. در اون این بود در رواج صاحب دارن و کره آن یک خون رزق القازی علناست. اگر این معنی صاحب دارن هم ثابت بشه یک سومی هم پیش بوده کراهت اخلاق و. حالا کرهه از کردم در مجموعه روایات اصلا در حدی عبارات معنی حرمت چه میگن گفتن حرمت میگن کرهه از کردم یه نکته ادبیاتی داره نه اون قانونی اون اینا تا بیاد کردم حوالی چند صابران متعرضش اونها در قرن اول بازار باها که رواج یعنی اولی ما علیمینی هستم چرا فهد مثلا قرن اول فقه بین علم ها شد و در قرن دوم که یه تدبین فقهی شد و کتاب های فقهی نوشته از نقل فتوها یه برنامه گذاشتن ها را گفت که برنامه غیر مکتوب برای احترام قرآن یه تعبیر را عوض بکنه عدبیات فقهی شون عدبیات, عدبیات فقهی شون این شد که اگر چیز در قرآن حرام را بگن یحنیم اگر در سنت بگن یکره حرام حرامه. خود قطعه. اما اگر حرمتش به سنت ثابته یکی یا به بعضی از روایاتی که محل کلامه که بگه قبوله یکی بگه قبول, قبول نمید یا تاروز داره که این تاروز قبول کرد یکی اون تاروز قبول یعنی به عباده مخواه اونجایی که حرام یا سنت یا دلیلش محل مناقشه است و هر حالیشون قبول کرده این یک تأبیر شد تعبیر نه حق. یه عدبیات فقهی شد عذبیات فکریش این شد که در این جوجه ها بگنی یک ره برای حد مرز بذارن بین قانونی که از قرآن استفاده شده فقه قرآنی و فقه غیر قرآنی از کردیم ما هم در روایات خودمون هم یک شبیهی مضمون در روایات صحیحه دارن تو ذهنان از محمد ابن موسیقی آقای نگاه کردیم شد من حافظام تموز یاد میشه این روایات در واقع عطم و عشقه ا و الله و و و باید اشعار این نظر حرام الله کتابه از و ترک کرده و نح این این یک ممثللب است. چون این در کتاب امیرون معامله کره ابکر هدغااضی و به ق در بااساست ما هم گانی و یک حزات آمده این اکره و داله که آمده گاهی تبیر لا بعته به کدا که مفهومش در غیرش بعت تو این همچنانی از حرمتی نمید بعتی لسیفیه مفهوم نراغی همشون عوائد از که از عوائد نراغی راجب که آیا لا بعت که مفهوم مقابلش فیه البعت مراد حرمتی یا شراحته لا اوهبو دارین لا دارین. ما در عده روایت لا یمبقی داریم که مراد حرمتیم خود فقهای ما هم ترویج پیدا کردن اما تحلیل قانونی نشده تحلیلش اینه تحلیل نوشتن بود یه برنامه‌ای گذاشتن برای احترام کتاب اون احکامی که حرمت داره کتاب مصحف نیست این تعابیر بگن ادبیات صحیشون تو تفسیر بله یا حالا باش راهنمایی می‌رن این مشهرا شده یک بید جور دیگه فرض میشناش ندارون میشه تو این یه استعمال میشه در اومد من میدم ادر نه من بیار. تحقیل هم چه بیجار هم جواهر هم زیاده اینو رو کردم به یه حدیثی در باب ربا کان علی یونی اکره همی و با کذا و با کان علی یونی اکره هل حلا به این تمثل کرده بیان به این تمثل کرده این مکروح این جوزه است. موتر این به ازمار کده خب تا اینجا ان شاء الله تعالی مسائل شد که به کجا به اسلام منتهی شد. پس اون اونچه که ما از در و تفسیر مجرب و, و تفیق و همه انجام میدیم اجمالا در اون کتابی که امیرمومن داشتن راجع به رزق اجازه دادن راجع به رشته امر تعریف یعنی اله اجمالا در اینه. سلطان از سلطان به سر. البته قط بین ادبیات و قرآن با روایت شما این تعبیر ما البته این از اول همه حدیث انرا حرامه و حرام الله في كتابه بعدن در رواه صحیح و سنه داره که ان الناس و ان الغافا و يعبرون عن ما به شامل تعبير کراهه تا به تحریر داره اینا وقتی عرض میکنه بگی عرض شما فضا نیست محمود باشه حالا مثلا بیاد بگه این چیزا نه بله پس معلوم شد اجمالا تا اینجا چون ما تمام این آخرین روایت همین امام و تفسیرمون بود که از جعفتیات بود اجمالا روشن شد که اصل این مطلب که غرف برای خوابی از بیت المال باشه این به اصطلاح ما در فیر و به اصطلاح دنیای است اصل این که باید نظام حکومتی دارای یک تشکیلات قضایی باشه و اسلام از اول هم به عنوان نظام اجرایی مطرح بوده نه اینکه این یعوشات خودش پیدا شد نه مخرب بوده با عنوان یک نظام اجرایی مخرب بوده که یک قوه قضایی باشه یک حد و حدودی داشته باشه هم بودگی داشته باشن تا اصل این در روایات ما برمیگرده در عصب امیر انصافا هم جز به استدا سنن قیلیه امیر مومنی نقصه گفته شده برای شواره احترار داده شده هم در کلمات امیر مومنی. در احکام و امیر مومنی و هم در کتابی که بیشتر به نام فیرهمانی بود ببینید، پس سر مجموعه نقل های اون قسمتش شورایی رو اینجا نیاورده، چون در کشور اول سنت آمادهه. میدونی که ادهی هم از دیگه از اولامای بعدی، معتقدن که ما بیایم اون چی که ما رو به امروز می‌نیمشون جبریم، حتی آمیختن سونیان آگاه جبر شورایی که کامل میشه. پس هم عملی بوده هم احکام حکومتی بود، حکومتی کلیه در احکام مالک اشتر. ر صنه ح ف ما ماریی و علته و تبل و مع و حاج کو ااس، اینقدر به این قاضی بود که محتاج مردم به پول از ننظر شده. و هم در موتون فره انره عملی، هم در متون فرقیه حضرت تروج بوده در سه جهت بود بر مای موجود بوده. هم در عمل خارجی که به شعید پول میدادند، هم در دستورال عمل حکومتی و آینامه های حکومتی هم ما موجود بوده که به مالک نمیشتن هم در متن فقهی رسای عملیه شما که از شد این قدر ما از این جعفریات لابود به منغازم و رزقین دلغازی نظام حکومتی یکی به قضا بست داره اینا عقلیه بگید خب عقلی هم هم لابود به منغازم و رزقین پس در سه مجال انصافا هره به همدرزیم وسوق پیدا میشه دیگر وسوق سختی مفاد که آدم با این همدر شواهی درش وسوق پیدا نشه پس تا اینجری که در دیرازهای ما بشه میرسیم بر میگرده اصل مطلب به امیر و نومنی سامنه داره الان در متن دائم ام آمده اونم با تبیر کرهه که احتمال رو داره از امیرالمومنین و پیدا اما روح روشن شد انشالله دل نزار من در نیست اون وقت یه چیزی دیگری گریف آهات در ما قاضی خودش نگیره ولی نظام کذابتی هست کمی دانام هستند یه از پوزه ولی که من شلوک کذابرسم پول نمیگیرم. علاوه یا این تا اینجا نتیجه یی چه بخوام یا آشکش نتیجه یی بگیم تا اینجا این نتیجه روشنه روح از, از موتونه کتاب جهانی است تو شریش هست. رشیتو حرمتش اجماعیه بین مسلمینه و قطعیه دیگه خیلی نمیخواد مالو بزنین که توی متن کتاب ثابت نشه دارین. اما ظاهرا مسئله رس رو با قبول میکنیم ترشمی نیست. ترشوامینی. و از بیت المال میاد. این حالا نرسیم این بحث <تصفح> تو بحث قاضی میدونم از خارج از بحثش رو چه خارشون ما خارشون. پس تا اینجا میشه نسبت دهمیر مامونی این رو نصفت داد و قبول کرد هم خود حکم فقی و هم لازمش که یک حکم اجتماعی و سیاسیه یعنی ما باید قبول بکنیم قبول قضایی باید باشیم دستگاه قضایی باید باشه یه ردیف موجه هم باید داشته باشه حتی به امکانات مالی باید در حد اشتباه باشد اینجا بازی با پول میکن و هر حال یه جوری باشه که در سطح مساقرف مردم هم بیشتر به او جاده میشه که خدای نکرده انحرا پیدا اون بال پول این خلاصه ای که تا اینجا به دست نشه و از کرد در این متون قرمکت رشته هم هست اما در اون نسقی ای که به ما رسیدم وارد شده. نوشته دیگه هم وارد شده، این احتیاج نیست چون مطلب مصدریه. الله حکمت. اخذ اجزه در یه نسخه وارد شده، در بقیه نسخ وارد نشده. و اونم نسخه دائمه. در بقیه نسخ اخذ اجزای ما نداریم. فقط مجموعه نسخه میداد روشن گذاری یکی, نسخ اح... یکی نسخه جمال احادیس قمیه، از همون نغرب جمال احاد اخبار شعریه به اصطلاح سرداواری، یکی نسخه ال و تفسیر صدوق یکی نسخه ای که از جعفریات ما داریم که صح درش تعریف شده ای. یکی نسخه دائمه یکی هم نسخه جعفریات موجود ما پس در جعفریات موجود ما تحریم نشو است و جواز رزق برای فاضل اصلا نه جواز اصلا باید قوای غذایی باشه لابد نه فاضل لابد نه رزق نداریم فهم ایناش واضحه اخذ اجرت هست که در نسخه داان موامده بقیه نسخی گفتیم نداره. هیچ کدوم از این نسخ نمدارده به در هیچ کدوم از این بقیه نسخ وارد نشده و الان هم نمیتونیم اسمینا نیست البته به لحاظ شواهد تاریخی نسخه داان بر تمام این نسخ میشربشه اشون خودش اهل مدیده محل نسخ بوده عرض خود خود ابنالعشعف سال سیتاد و پنجا و پنجوه سه و خود دائم سیتای شسته سه نه سال یا ده سال بعدشون ازشون خوب شده بود به زمان ازش ازشون گرفته نقل و نقل خوبی در حال شبه هست مستقیم آنز گرفته لیکن به همه حال در بقیه نوسخ ما نیامه دیگه دور از خوده ماست دور از خوده ماست لیکن این نشون میده که اصل داشته ها چون یه دیت از خواهی ما تصفیه کنه قدم ه اینطور تا چیلی نباشته یعرام نمیده اجمالا اصلی داشته اما الان به دست ما نرسیده روایت بعدی که در اینجا شما در شما ریاضه به اسم عمالی ابن توسی دیروز اگه یادم بارکتون باشه خوندیم از رسائل که مرحوم خسر شیخ توسی که اسمش ابو علی علحسن خود توسی محمد ابن حسن ایشون به محمد حسن محمد عبیب همین دوید سوزیاد چه از که از روایات آمه است این رو بناه شد چون شیخ مستقلن عنوان داده اونجا ما هم مستقلن حدیعت و عمره غلولون بناه شد این بناه شد که بعد مستقلن روی حدیعت و رو عمره هدایل عمره غلولون اونجا متعبید بشید حدیث شماله دوازده از امالی مرحوم شیخ مفیده قال اخبرانی اول آسن جعفر ابن محمد ابن گولده ای هم کنان ارزت هم کنان زفت سهیشون گلویه هست و که نیگاه خلط مشغولی شده سیویه و این اویه مثل شیرین مثل یند در فارسی شیر شیرین زرزرین مثلا سیم سیمین یعنی سیب سیبی به اصطلاح مثل یا نسبت یا انکیل کرسی زادو به نصر این یا نسبه ویسا چیه و پول معرر کلمه گل یعنی گلویه گلویه که کلمه می گونه مثل بلد می گونه مثل سی بویه مثل سی بسلا مثلا قلویه بردی هم برد یعنی گلویه این قلویه از شد که دارن شد داخل بحثا پدر ایشان از شاگردان سعده محمد ابن قلویه از شاگردان سعده کان مخیار و, و خودش هم قومیست خود جفر پدرش که آفر قوم بوده خود ایشان قومیست بعدها منتقل وقتا می شه در وقتا فوت می کنه عادتا از بزرگان مقومه که و در حرم سازنه که درست شده نشونه و نظر بسیار بزرگوار خیلی جیو قردی و, قرد و تقیه و باوی و, و از مشایخ بسیار بزرگوار مرحوم شیخ مفیده فهرستی هم داره ایشون هم در روایات نختش کوبه هم خودش کتاب داره کتاب به کاملوزیاد و هم در فهارس ما هم نخت داره مرحوم از محمد ابن قولویه از پدر ایشان، از حدیث مربوط شده مفید در بغداد ابنا هم در بغداد بوده داره میگه در قوم دارم که حدیث داشتند که از سویشون از بغداد بگم داد ابنا علويه در قوم هم دب ن عبدالله این هم در قوم احمد دب محمد دب ن و محمد دب ن حسن دب احمد هم در قوم احمد از کلم به کوفه آمده از خود حدیث میشه به کوفه روشنش را قال كل نهر كان في ترنسيشه، كل در خون بوده به بغداد اونور، پدر ساکن اون بوده. این... ما روشن شد این حقیقت. حال این حدیث جریان تاریخی روشنی هست به زبان فستوش. البته این نشون میده عظمت قومی ها خیلی مهمه. چون شیخ موفیزی در بغداد بود، اگر راه های روشنگرش بود باید هم خود بغداد میات خوشن. چون انا حسن محبوب وازن و ساتر حسن محبوبه پس کتاب همطور که من عرض کم تولیدش از کفه است حسن محوظ بعد به قوم آمده از قوم به بغداد رفته قائدش اصل این بود که از خود بغداد مستقیم به کوفه بره این عظمت قومی هاست که مسادر اصحاب حتی هم کوفی هم در بغداد مستقیمی منطور بود که <تصفيق> عظمت قن همین صندوقه که یعنی که و خلاصه منظور با همین پیشینه یا اینکه نه بعد از احمد که بعد علایاهاله ان شاء این نشون میده عظمت حضور قم حافظ همین حضوراتون به حضور نه راست حالا اینقدر تاثیرگذار نیست تصویر قم ما خیلی تاثیرگذار اما اگه واسهتون شهر و کشور باشه بله بله شهر انه حسن ابن محبول انه ابن سنان که مراد عبدالله هست چون اینکه از مشایخ بسیار معروف حسن ابن عبدالله ابن سنان در راوی هست تقصیب مونی لذا مثل این روایت احتمال داره از خود خود کتاب حسن محبوب باشه احتمال داره کتاب عبدالله ابن سنان به نسخه حسن محبول هر دوش احتمال داره برها حسن محبول خوفید و بعد مرهومه ابن سنان هم کوفید هم و هموه هم که کوفید از تولید ایل در کوفه بوده نشتش و خالایشی زرقون بوده بعد دو هم بردار. این مستب دو هم بغدار مفید من. این ما کم روایات ما سنگ نیکنیم ما سیر تاریخی روشن اما همونجا هم خیلی موافر نمیشیم. یه هفتاد هشتاد درستار یه سرکرین موافر نمیشین گیر همون جیده. من عبی همزه سومالی عبی و خیلی هم روشنه همه بزرگان اصحابه عبی جعفر محمد علی الباغر علیه السلام قال, قال موسن و امران هلا نبی نابعالی علیه السلام در رواه که قال الهی من از سیاه که من خلقه قال ریل ریل از ریل کبسین از ریل قدم شادا فرآ از رواه به معنی سیاه شدن رواه سیاه شدن یهول صادقان حرف راست می‌زنه این واقعا چه مشکلی بود چون درو اصلا که الان تو جامعه ما خیلی زیاد شده متأس ییهول صادقان و یم شی و هونا یا هونا الله باو رحمان فاولا که تزول الجبال یکی از اون صادقان درست یزول الجبال و لا یزولون قال یا الهی الاهی خمنی رو انصافا سند حدیثی که بیرونش متن حدیثه اون خیلی شیرین میشه یعنی خیلی آثار بر نا کل حقن حدیثا و على كل ثوابتون رو انصافا وقتی سند خیلی واضحه مطمئن هم خیلی زیباست یعنی کمان که از تمام اعرو و احادیث اون فهموها خیلی بلاازه فصاحت و بلاغتش و الفاظش همه جهاتش خوبه قال ان هار ی تمام ینزلو دارالقدس اندک و احوا معلقه به ازل قدس قال الذي لا ينظرون هم الى الدنيا ولا يغون اسرارهم في الدين ولا ياخذون على الحكومه الرشا الحق في قلوبهم والصدق على لسانهم فاولئك في سفر في الدنيا وفي دار القوت في الاخره كثير الصالح في فعل الله عن سعد سعد خوبي هم بسیار متن زیگای فقط هر اون احتمال داده که حکومت مراد خود نظام باشه دولت باشه ممکن است چون تو جلس و حاکران هم قاضی هم, هم در رویات رو همه هم, هم ممکن مراد عذابت باشه اون اگر مراد حکومت باشه پروبی هم که حاکم میگیره برای اینکه که در مر... مردم حکومت رو خود نه یعنی زلم میگیره اون هم رشان است. اگه اون باشه تنزیله مثل آیه اومده که برای بسید دوبه های در حکام حکام با مطلق دیم علایه خبه این بباید اون که ناظر به رشوه، هم بر احد و حجوت بسیار خلاف ظاهره از مجموعه این روایات این سنده خوبه این سنده ولای اخوضون علال حکومه رشان سن... علال حکومه یعنی به حکومه نیکیم من پول نگیرم، به نگیرم. اخیر دو احتمال دارید اینکه حکومت در این نظام نه حاکم باشه و از مردم پول نگیر پول زور از مردم نگیر یکی این که نه حکومت این قضاوت کردن برای قضاوتشون رشوه بگیرن این نفی نیست احتمال هم داره که میونه شو مبلغ و اجرت بدن خلاف ظاهره علایوهان به لحاظ مصادر شیعه خودت بس کنید روایتی که توش عنوان رشا آمده غیر از مصرف خرج شوت تلح اینجا باز من از خیرم مطلق در رویات ما نیامد در صحیح معتومت نه در فل فلحکم آمده رشافل فلحکم آمده اینجا متاسفانه علالحکومه ار رشان این آمده یا متاسفانه هم مشکل دیگه اینه که از زبان انبیاء سابقی نیم. و حتی چون مراتب عالی است احتمال داره و رو هم شامل باشه چون این مراتب آلیه گنزلون دارن دید. دید که اینا، مثلا حتی پول حلال هم نگیرن چرا به پول حرامه. برید نیست الی حالا این روات هم میشون از اماماده مفی بلن بعد نیست سرندش خوبه منش هم کهگی ری اما اینکه دلارات که بر رشوه به عنواناح کنه رشوه با آن حرامه، ما بتون در روابط ما رش و سرشونتزیعلله راشی مشید در روابط سیه ما نیامیم. بعد از کل سالابقن کلارن این طرح آین بروجردی بود، مرموم سال و از اینجا احادیتی میارم میوه به چیه کجا گذاشت و از ترخیر دیم مرموم اعتقالشون این بود در این جلسه ای که برای جامعه احادیت قرار به جای این عنوان مبهم تقدم و یعنی خود اونها رو بیارید. اون محله حاجت چون این حدیث ممکنه پنج سخت باشه اونی ک اون نحل احاضیت رو بیادی نگیم تقدم رو های دادن رو داده که هستی چون تقدم نیست بگیم تقدم باب فلان این قسمت حدیث تقدم فکر اسم این جامال احاضیت این کارو کرده اینه مثل وسائل نیست ولی ازا بگیم مثلا تقدم فیروات همار اینی که لطف مثلا کتاب جامال احاضیت نسینا تو این باب 28 حدیث داریم ایشون نویسته درباب رشوه ما در باقی نشود 28 تا حدیث داریم مراد اینشون از 28 تا حدیث با تقدمه یکیش همه اشتباه نشود <تصفيق> مثلا مقابل را دسته برشد نشود مقابلش 28 تا حدیث اونی که حدیث اصلی آورده 11-12 تا شونزه هم تقدمه این چون دروقات ممکنه بخونید نشود 28 تا حدیثی همه چون سال نشود 12 تا حدیث با همدوگه جوزه اگه سال حالا ممکنه شما بیای ما اگه با این کار کنیم، با تقدم شو استادم تقدم یادتی سوال سوال نگاه بکنیم مثلا می‌شیم لامبورگینو، مارواهوزو، مارواکروم محله‌ها جدی می‌کنیم. بعدم زیگش آدرس می‌کنیم، با و برابر با. چون ما تقدم یادتی می‌دهیم. الان چه که مکان راه‌های دیگری هم هست، اما که با کامپیوتر باشه که راه‌های شیب‌شده استادم کار. تقدم یکیش رو بازه آماره ام ماروانه که خوندیم، هم نرخ شاپل خوب. واژه روابط عموم شماره دیوردی که یکیه. یکی روابط سماه بازی شماره بذری. واژه نوشته برای روابط سماع، باز شماره بذری که اون یکی است. برای که احماقا باشه. مرسله تهدید که اون مرسله خری رو من شهر دادم. چند تا حدیث مرحوم تا صدق جمع کرده، حدیث واحد نیست. برای اولین بار مشخص روابط واحدی نیست. و روایت اصلاکی که خوندیم که روایت بدی نیست یعنی اخذ به شادتن که او مشکوک هستند سنداً ضعیفه و في رواث سکونی بر عیاشی و تو این اینا مفصل خوندیم که یکی از کسانی که در مانعنفی روایت مفصل ابن سعد به هم مختلفه در وجه به صوت داره عیاشیه و في رواث من الرشوه اصلا صوت الرشوه تو ذلهو عرض کردیم و مفصل خوندیم این متن جعفریات هم فقط در نسخه ما موجوده در این نسخه سابق نرم نشده و تنها روایت که صحط رو جنسا 15 تا تا کرده خیلی سمان الفراتون هم یک چیزها رو ما هیچ روایتیم مثل روایت جعفریات در عدد صحط نداریم منحصره در روایت جعفریات جعفریاتیم خیلی طولانی هم و روایت عبدالله تلحرم خوندیم که عدد صحط سرعر شرقه به حکم ضعیف ب و روایت ابن فرقد دیروز خوندیم سهل تو انسوت و قال عرشت و فتر رشت من شمیدم که در کتاب کافی مطبوع جدید نوشته در تمام نسخ بخته چون مسئالم نوشته از کافی در تحضیل صحته و به هر حال به بهتوم... احتمال من محسن مراجعه کنم شش هستی به نگاه کنم نشه یا نگه خورتن خلاص. احتمال میدم یک ای در قرآن بخص توش آمده مورد مراد باشه بخار احتمال این با اون که میگیدید که برای ترخص و هم مثلا باید اون بهتر میکنه. من مخاطم این آیت احکان کشور رو بذرم تمام آیت بروش کلم چون به احتمال بسیار قلی اهل باشه جنس نباشه اگر صوف باشه خیلی بازه اکانون لصف به را بازیت احتمال بسیار غلیل اتفاق اهل افتد ذکری باشید. خوب کافیه از که تربیت دیگه پیشامی از نسخه‌هایی که بوده در زبان‌های آلمان و آنل، البته. بله. بله. بله. البته. البته. البته. البته. البته. البته. میگه در کافی بخث در یک جای دیگه کافی نیست دیگه اونو نیرم اینجا یک رقم <تصف> هم الان یه حاله یکیش که به رشو بخوری مثلا از شما ممکنه بخوری که رشوه که از مسادر مثلا بخش و هر حال به نظر من یک جایی یا در قرآن یا در سنته که مراد از وقت در اونجا با قرائینشو باشه سامر و, و راه اون باشه یا قوم و این میخوره انگيزین که این انصافا <تصفيق> میخوره چون اوفر کنی و, و, و میخوره که شما اگر این مثلا رشوه بدیم بخت یعنی حق مردم زایعه کرد شاراوم این احتمال داره با احتمالش احتمال شاراخ تفصل من اگر متنی کافی درستشون در جایی نسخ آمده بخت یه جایی یا در قرآن یا در روایات بخت به معنای رشوه با قرار اما فرض که واژه و در که یهود از این بازی های بازی مالی در میارن تو زمان ما هم دارن این فساد مالی دنیا دیرسته بوده. چون در این آیه مولاد که اکارونده در زیر یهود داره حالات یهوده که رشوه با رشوه دادن فساد مالی و اداری و غذایی و همه چیز رو انجام میدن علایه ها سرد باشه واضحه بله، و در مورسله مجموعه بیان نسرد و رشوه و فی رواية الاون اگر رواية الاون که ایشون انجامشون دادم شماره هشت اینجا و فی جابه من منبع تعلیم نازل اونو خوندیم ولی این رسول الله جل نیاز نازل نه این در داره چیز نه سختتره داره زیرا روشن می‌شی این دلار را این دلارش روشن نیست و فی رواية دعاهم اختصاص الاظاف النبی ان مثل ما قبل لا يجوز ان یکون امين على دماغ و الاحکام زلل مرتشی, اینجا هم مرتشی داری اما در حکم تایل همه به حقوق الناس اینجا مرتشی داریم اما منحصرن در دائم اومده و خیرواس دائم یا که و قبول تو حس من الخصوم و حاضر دخله حاضر این من حذر باش از دخله دخله چی یعنی انسان داخل. یعنی تو اگر حدی میگیری حدی ممکنه سر منعرف بکنه در در داخل قلب تمایل رو به یک طرف بکنه این رو مناسب با بحث حقیقت این کل روایاتی بود که ولی جرب بود ما برای شما خوندم که این جهاد کامل و بشه و معلوم بشه بعد روایات ما در این مجال چیه چون دسته راهبرده میگه من یها ندارم که تا رو بیاد ما چه اجمالی همه از کلمات اهل سنت براتون بخونیم که زمینه این در میان اهل سنت هم واضح بشه در این بصلاح... کتاب به صلاح کتاب المغنی ابن قدامه گشود متحدث به اصطلاح بحث عادی شده بله در بحث قضاغه کی شون داره فصلان در صفحه این جلد 11 این چاپ چاپ که لامو این بودن در بحث قضا فصلان و یجوز ال قاضی اخذ رزقه و ببینید که در اقوال درخس فی شری کی این بوده طب اینو در صحابه نیم. زبن و تیرین. این هم جزء تابعین و شافعی، این جزء فوقات هستن بعد از تابعین و اکثر و اهل اهلیه اهل. کمشن شد و از قدیمترش و رو بیعن عمر رضی اللہ عنان نهو استعمال زیده من صابر هلو قضا و هر از لحور پس قبل از انگیار مومنین قلیم فرین شخصی شخصی که این داریم از زمان عمر به قضاوت مفرک شده و فرزله و رزقه هم و رزقه شریه هم تی کل شهره معت دره و بعد ایل کوفه اممار مراد مران اممار و عثمان ابن نهونه و عبدالله هم مسعود سه تا از بزرگان رو به کوفه رساد و رزقه ها کل یام شاتن رزقه البته این رو حالا ایشون نوشته اما این یک شمع دیگه هم داره گفت برای این روزانه بوسن روزان به بدیم نصفش رو به اما و نصفش رو بازی یک چارمش به عبدالله مسئول یک چارمش هم با اصمانه نهانه اصمان این نحوانه این مسعود و برای چی فرستاد؟ برای قضاهای فیلمان؟ اصمان این محوانه فرستاد برای این که ایشون مهندس راه ساخته هم بوده موضوع در راه در ساخته بوده در هندسه ایشون فرستاد که عرض عراق را اندازه گیری کنه یعنی اینها در اون زمان با هم راه و شطا خیلی عزیب با شطا و غلاق از بسره و همین فرستا بناسه را جنوب عراق تا حدود بالای بغداد رو با اندازه گرفتن و از قصر شدیم تا حدود سماورادی سماورد که پر از نهر بود اندازه گرفتن خیلی عجباتشش میدونید چونمیس رو بودن چکاکه من نیمتونید خیلی خود از سی و شیش به اصطلاح که میادید تو ارازه خویست تو مکاسب میاد سه تا سراسین الف الف جریب رو اندازه گرفتن و سخت کردن ما مناسبی که مرتفع بود استثناء کردن مناسبی که به استثناء ما بگیم مردم یا ارمان مستنقهات مستنقهات کنونم مناسبی که زراعت نمیشد تمام فقط مراتب مراتب زراعی رو اندازه گرسن سی و شیش برای این جریب و داره اولین بار در دنیا رو سخت کردن چون قبل از این هم بایدن و به این فرد مثلا 20 جریب بونه که 30 جریب بونه حساب میکردن دیوان بود این اون جهبی تو زهن من سال اول هم خراجه را هیچده ملیون درهم بود. بلد 24 بلد 36 نرشن. به زمان همین 24 یا 36 نرشن. هلا یه هاده یه گوستن نفس اشمال اما روب اشمال عبدالله مسعود روب ادیگه شمال عثمان ابن نهانه وکان ابن مسعود قاضی همون و معلم اما جناب آقای عثمان ابن نهانه حاسب بود. و کسب علام آزبن جبر و علی عبی عبیده اینکه که متن یه محن هست از امر شبیه فرمان امیر امیر به مالک اینه کسب علام آزبن جبر و علی عبی عبیده اینه بحث امروال شام بگیرین اما این امروالیه من صالحی من ابله کن اما این عجیبه وقت ترد غذا از این امروالیه هست رعیت که اینه خیلی من سالهای من قبل که فست هم علی و آواز او عليه ورزوهو هم بکفونم بود؟ بوده؟ نه جلو هم کی عجیب است؟ بک بک بک بک بک بک بک من اون بک بک بک بک بک بک بک بک بک بک بک سخان الله این نزدیم این کتاب را همین به مالک اشتر نگه می‌داریم. کتاب علا مادر نه ابی عبیده این نباید ساموالشان، اند زور رجال من ساله می‌خواهند که فست عملو هم علی القذار و آوسو علیهم هم و زغوهم و کفوهم آوسو علیهم زیادی انتشند. یه هم در کنیم اونو می‌کنیم. راسته اون فرد جو جو و آوسوهم و عوصه او علیه عوصه او علیه و زغوه هم و فوه هم بمارده رقال اول خطاب این تفصیل در فقه اهل سنته یجو جلق و اخذار رزم الهاجه فاماما ادم ها فعلاقشه این نقطه ها چرا اصرار دارم این تفصیل دیگه اینکه حاجت باشی را نباشه. اصلا در روایات ما نبود هم نرواز کندم برای تو چطور شد این تفصیل در الان ک ما از نور مهم در فتح همینه ریشه رو پیدا بکنیم چرا با که در رباره اتما حاجت و عدم حاجت نبود تعییونت ازا و عدم این اصلش در کتب احل سنت و فتاب احل سنت بود آمد به کتاب مفصوط شیخه از مفصوط شیخ آمد مفصوط شیخ آمد به نه دکر کردیم این شادا فراد وقتی کتابتون به عبارات بکنید این مطلب براتون ر و قال احمد ما یعجبونیم یعنی خوده على اجره. عجره فکر این اجر این احتمال ما یعجبونیم مثلا اون کرهیمونیم این از فوقها و فوقها و این کانسته و قدره شغله مثل وادل یفیر و کان ابن مسعود و حسن مواد حسن بسیر یفرهان على اجر على خضای ببینیم این کان حسن و عبدالله مسعود این درست ابن مسعود که زمان ایمون زمان اون رو که ما الان در روایات ما خوندیم در کتاب دا ام کان علیان یک رحم یک رو به عراض غذا این اون رو که ما در کوفه از آدی رو مهمی داشتیم اهل سنت در کوفه و در بصره. و کان مسروح مسروح اهل یمنه شون بچه بود دوزبیدنش بعد خیدا شد اسمیش مسروح بوده اسمیش مسروح اسمش وکان مسروح و امتنم و تا به تابعین خیلی هم بین اهل سنت خیلی شخصیت قابلین خیلی هم علاقه منده به آیشه از مورید سرسخ سوایشن و عبدالرحمنم قاسم عبدالرحمن پسر قاسم عبدالرحمن این عبدالرحمن دایی امام صادق میشه چون مفروفت دختر قاسم عبدالرحمن و قال این عبدالرحمن ام مفروفت برادر خوهر عبدالرحمن لا یعخوذان علیه عجر اندید و قال الله مخوذان علاقه نعدل بین اسنه این این یک تذویر زیبایی لا نه خدا اجران الا عن العدل بین اسمن ما برای ادارت انجمن میگی برای اداره شو وقت وغ شد گفتم تا کارش بشه حالا کلامی که اصلا تمام تو یه فرع کتاب نیاره حالا بعد ان شاء اون است. محمد و